آن روز گذشت و من به مرور و در گذر زمان و آشنا شدن با سرگذشته آدمها به این نتیجه می رسیدم که تمام زندگی مثل داستان است. داستان های جور واجور بعضی پرهی جان و پرفراز و نشیب بعضی آرام و درگیر سکون و روزمرگی و بعضی مثل خواب های آشفته و پریشان. ولی آنچه مسلم است؟ در تمام زندگی ها یک چیز با شدت و ضعف است و آن فرسایش و رنج است که جز الایم تمام زندگی است و برخورد آدم با این جزء همیشگی متفاوت است. بعضی دوست دارند خودشان قهرمان داستان زندگیشان باشند. آنها آدم موفقی هستند که به هر قیمتی داستان را مطابق میلشان عوض می کنند و جلو می روند. رنج میکشند اما از آن مثل سیقل روح استفاده می کنند، نه وزنی به پا برای درجا زدن. ولی بعضی ها ترجیح می دهند که سیاهی لشگر داستان زندگیشان باشند. برای همین در مسیر زندگی جا به جا های مختلف پیدا می شوند و زندگی آنها را نقش میزنند و میروند و معلوم است که وقتی آدم سیاهی لشگر باشد، باید به فرمان قهرمانها گردن بنهد و تسلیم شرایط باشد. و همین باعث می شود که مرارت و رنج اینها بیش از دیگران باشد. و به این نتیجه می رسیدم که اگر آدمها تمام سعیشان را بکنند که به جای سیاهی لشکر قهرمان اصلی داستان زندگیشان باشند، تمام داستانها اگر با سختی و رنج و, فراز و نشیب اما بدون شک، پایانی دلنشین خواهد داشت که کمترین حسن آن این است که دیگر لعقل آدم از خودش گلی ندارد. این حقایق را آرام آرام می و از سیاهی لشکر بودن خودم حالم به هم می خورد و تمام توانم را به کار می که از آن حالت منفعل به چشمهایم گرچه دیر ولی به هر حال داشت به روی حقایق باز می شد. این بود، که روزی که تنها سر خاک پدرم رفته بودم، قول دادم. به پدرم قول دادم و با خودم عهد کردم که گذشته را جبران و دل پدرم را شاد کنم. زار زنان با بهترین پدر دنیا درد دل کردم و احسر خواهی. خیلی تلخ است که به جای پدرت، پدری که سالها کنارت بوده و تو قدر لحظه ها را نشناخته و بیس همر از دستشان داده ای، به سنگی سرد و سخت و تیره چنگ بیندوزی و زار بزنی صدایش کنی و جواب نشنوی آن روز تا نزدیک غروب شیون کردم و به خاکی که باور نداشتم پدرم را در دلش پنهان کرده باشد چنگ انداختم و تمام آنچه را که خیلی زودتر باید اعتراف می کردم موی کنان و درمانده گفتم و آنقدر اشک ریختم که دیگر حرفی و عشقی باقی نماند و دلم آرام گرفت و قلبم بعد از مدتها از زیر آوار نجات پیدا کرد. و یاد این حرف محمد افتادم که می گفت بلاخره یک نفر باید به آدم حقایقی را که نمی تونه بگه. راست می گفت من توی بازگوی درد دلهایم به پدرم حقایقی را که مدتها قبل باید می فهمیدم تاسه فهمیدم. گرچه دیر ولی به هر حال دیر فهمیدن بهتر از هرگز نفهمیدن است. همان شب بود که خسته و بیحسله از سردردی که امانم را بریده بود روی تختم دراز کشیده بودم که نرگس به سراغم آمد مثل همیشه سرحال و شوخ بود گفت که با آزیتا میخواهند اسمشان را در کلاس خوش نویسی و و منتظرند که حال من بهتر شود از سر بیحسلگی گفتم من فعلا حال کلاس اومدن ندارم نرگست انگار اصلاً حرفم را نشنیده باشد گفت. راستی دکتر ابهری هریه کلسه حافظ شناسی تو دانشگاه ادبیات گذاشته که عمومیه. ما هم میتونیم بریم. دوباره با بی گفتم. گفتم که من حالشو. نگذاشت حرفم تمام شود. پرخاش کنان گفت. محلاز این عده ها رو از خود در این همه راه نیمدم که نزه جنابالی رو بکشم یا ازت اجازه بگیرم. اومدم که بهت بگم از این هفته به بعد برنامه چیه بس خودتو لوس نکن دهن منو هم باز نکن لطفا در حالی که بلند میشد گفت در زم جمع صبحم کوهیدت نره با خون سردی داشت از در بیرون میرفت رفت که با هرس گفتم من بهت گفتم که نمیام در را بست و برگشت رو به من و با عصبانیت گفت اولا که پاشو مثل آدم بشین و حرف بزن برای من عدای بدبخت های بی دست و پا رو در نیار. دوف که تو غلط کردی مگه دست توه؟ چه مرگته که نمیای؟ اینجوری میخوای به بابات ثابت کنی که واقعا داری و به خودت ثابت کنی که بچه خلفی هستی و خوب اذاداری میکنی آره؟ خب بسه دیگه بابات متوجه شدن از خودت هم میتونی متشکل باشی که. حرفش را بریدم و گفتم معلومه تو چته؟ مگه زوره؟ نمیخوام بیام میخوام به بدبختی خودم بمیرم به تو چه مربوطه؟ نرگس یک دفعه آدمی دیگر شد با چشمهایی از حدقه در و لحنی که تا حالا نه از او دیده بودم و نه باورم میشد که اصلا داشته باشد به طرفم پرخاش میکرد و من ناباورانه نگاهش میکردم حرفهایش را جویده جویده میزد و به زور سعی میکرد صدایش را پایین نگه دارد بدبختی؟ تو اصلا میدونی بدبختی یعنی چی؟ یک عمر راحت آسوده زندگی کردی هرچی خواستی حاضر و آماده بوده هر کاری دلت خواسته کردی نزاشتن آب توی دلت تکوم بخوره مباد و دوره یمانی از چشاد بریزه تا بوده که خانوادت برات قش و ضعف کردن و بعدم شوهرت که اونم آخر سر به قول خودت بازم از خریت تو گذشت رفت وقتی هم رفت اونجوری رفت که مبادا کسی به خانوم تعنه بزنه کی تا حالا به تو از گل نازوی گفته تا حالا کی تعم بدبختی رو چشیدی کی گفته بدبختا دست و پاشون رو به قبله دراز میکنند تا بمیرن بیچاره تو چه می دونی بدبختی یعنی چی اگه می دونستی هر دفعه با یه تلنگور اینطوری مثل جنازه رو به قبله نمی من متعجب و حیران فقط توانستم بگویم نرگس باورم نمیشد نرگس اینطوری با این لحن نیشدار و تلخ بزند برای همین فکرم درست کار نمیکرد تا کلمات را ردیف کنم بریده بریده گفتم تو که نمیدونی؟ دوباره حرفم را برید من میدونم خوبم میدونم چون خودم کشیدم و اونچه رو هم نکشیدم اندازی موهای سرم دوست و رفیق دارم که شرح بدبختیاشونو شنیدم ولی تو چی؟ تو الان سه سال منو میشناسی اصلا به ذهنت خطور کرده از زندگی من سوال کنی؟ وقتی اینقدر توی خودت غرقی معلومه یه باد که به سرت بخوره فکر میکنی دنیا رو توفان کن, کن کرده اگه تو هم؟ یک دفعه گرفت رویش را برگرداند دستش را جلوی صورتش گرفت و گریه کرد. گریه آنقدر سوز سوزناک و مظلوم که دل آدم را ریش می کرد. آن شب نرگز پیش من ماند و من ناباور و گیج با یک داستان زندگی دیگر داستان یکی از عزیزترین کسانم آشنا شدم. پرده دیگر از جلوی چشمهایم کنار رفت و ما بیش از پیش به هم نزدیک شدیم. برایم تعریف کرد که پدر و مادرش دخترم و پسرمو بودند و پدرهایشان از خانهای سرشناس دزفول که از بچگی ناف بچه را به نام هم بریده بودند. با اینکه پدرش سابر دوازده سال بزرگتر بوده ولی وقتی اولین دختر و تنها دختر خانواده امویش یعنی مادر نرگس به دنیا می آید، دو تا برادر با هم توافق می کنند که آن دختر که اسمش را اختر گذاشته بودند همسر سابر شود. بلاخره سالها میگذرد ولی وقتی اختر خانم تازه دوازده سالش بوده، پدر نرگس آشق دختر یک سرهنگ که از تهران به دسفول منتقل شده بوده میشود. و جنگ توی خانواده های دو تا برادر شروع می شود. بیچار اختر خانم که خودش بچه بوده و چیزی نمیفهمیده. ولی امویش و پدرش سر به مخالفت با آقا سابر برمی آقا سابر به هر کاری از خواهش و التماس گرفته تا توی روی استادن تندر می دهد تا پدرش را راضی کند ولی موفق نمی شود. برای همین قهر می کند و از آن شهر می رود. شش ماه بعد به امید اینکه پدرش و امویش سر اقل آمده باشند برمی ولی دوباره همان آش و همان کاسه بوده. آقا صابر که بدون رضایت پدرش و پشتوانه پول و اسم و رسم و ثروت او نمی توانست رضایت پدر آن دختر را هم جلب کند، درمانده می شود و دوباره به التماس می افتد. اما پدرش تنها کاری که می کند مجبورش می کند با اختر ازدواج کند. آقا صابر هم با این امید که بعد از ازدواج سهم زمینش را از پدرش بگیرد، بالاخره تن به ازدواج می دهد. و از قرار خیال داشته بعد از گرفتن زمینها و به نام شدن رسمی آنها بدون اینکه واقعا همسر اختر خانم شده باشد از او جدا شود. منتها پدربزرگ که به قول خودش از او زرنگ تر بوده وقتی پی میبرد که رابطه ی زن و شوی بین آنها برقرار نشده از زیر بار اینکه سهم صابر را بدهد شانه خالی میکند. و بالاخره آنقدر صابر را تحت فشار قرار می‌دهند که به قول نرگس انگار پدرش را پای دار بفرستند به زور می فرستند توی هجله و از بخت بعد اختر خانم حامله می شود. نرگس می‌گفت گفت و عشق مادر بیچاره فقط چارده سالش بود که من حامله شد آقا بزرگم بهونه دستش افتاد که بچه که دنیا آمد برای مجدگونی زمینه رو به نامش کنم اصل خیال میکرد داره بابامو سر عقل میاره و خوشبختی مادرمو تصمیم میکنه. غافل از اینکه با سرنوشت چندین نفر به خاطر فکرش بازی میکنه. خولسه من به دنیا اومدم. در حالی که پدرم حاضر نبوده حتی یه نگاه به مادرم مادرم بکنه. هرچه چه پدرم اینجوری رفتار میکرد. به واسه اینکه پدر بزرگم سر عقل بیاد بیشتر قضیه رو کش میده و اینطوری من 6 ساله شدم. در حالی که مهنوز باورت نمیشه یه بار هم بغلم نکرد یا صدام نزد و حتی یه نگاه بهم به نکرد. آقا بزرگه نفهمم به جبران پدرم من و عزیز میکرد و احترام میذاشت. ولی من تای قلبم همیشه آرزوی اینو داشتم که مثل همه بچه ها روی پای پدرم بشینم نه پدر بزرگم. کشش خونی یه چیز غیر قابل این منم با همه بچهگیم. با اینکه هیچ توجهی از پدرم نمی دیدم کشش عجیبی نسبت به اون مردی که همیشه اخمو و بی تفاوت از کنارم می و فقط می دونستم که پدرمه بدون اینکه هیچ علامتی از سمت اون ببینم داشتم. میون بزرگتره احمقم برای اینکه مثلا مهر پدری رو تو دل پدرم بیدار کنن مرتب به من کاریات یاد دادن. اون باباته صداش بزن. برو جلو رو پاش بشین برو بوسش کن. بگو بابا دوست دارم کفششو رو جفت کن درش آب ببر. و من مثل یه خونه شاگرد هر کاری میکردم غیر از اینکه صداش کنم. از سخمش میترسیدم. و هیچ کس نمیفهمید که من با وجود بچگی چه رنجی از این قصل می برم؟ اینکه مجبور بودم محبت از بدنم گدایی کنم. بلاخره تدبیر هیچکس هیچ کس را به نبرد آقا بزرگ از زمینا برای پای بندی و اسارت بابام استفاده میکرد همچنان حاضر نشد پدرم و بده این شد که وقتی من شش ساله بودم و مادرم بیست ساله پدرم سر به نیست گذاشت و رفت. از جا پریدم. رفت؟ مزخرف نگو نرگز؟ به همین راحتی؟ نرگس سرش را به علامت تایید تکان داد دوباره بت زده گفتم کی برگشت دیگه برنگشت هاجواج گفتم نرگس من خودم بابا تو دیدم شبیه خودته خودم دیدمش صبر کن میفهمی بابام یه روز رفت و دیگه برنگشت سه سال تمام همه جا رو دنبالش گشتن. هر کسی یه چیزی میگفت، یکی میگفت رفته خارج، یکی میگفت با همون دختری که دوست داشته فرار کرده، یکی گفت خودشو کشته و خلصه امید آقا بزرگم که ناامید شد، کرد و از قصه مرد، ولی چه فایده؟ مرگ اون نه برای من بابا شد، نه برای مادرم شوهر، نه برای بابای بیچارم زندگی یه سال بعد اموم صادق، همون که تو دیدی، با مادرم ازدواج کرد اما دو سال از مادرم بزرگتره و میدونی چی از همه تلختره؟ این که از بچگی مادرم دوست داشته و خودش میگه تصمیم داشته هیچ ازدواج نکنه. <تصفح> بیچره اونم مثل من و پدرم و مادرم بدبخت افکار احمقانه یه دیگه شده. خلاصه وقتی من ده ساله بودم با مادرم ازدواج و چون توی اون محیط کوچیک و با اون حرف و سخنه و آنچه گذشته بود زندگی برشون سخت بود اومدیم تهران. همون صادق هیچ وقت هیچ محبتی به من فرو گزار نکرده و تا حالا به من تو نگفته. کارایی که برای من کردن نه اون نه مادرم برای سه تا بچه دیگرشون نکردن. ولی من هیچ احساس آرامش یا خوشبختی نکردم. من که دهانم باز مانده بود گفتم. پس برای همین به بابات میگی خانمو؟ نرگس خندید و گفت. <تصفيق> خب آره، مگه تو چی فکر میکردی؟ فکر میکردم تو مثل همه، یعنی همیشه که همینطوری با همه حرف میزنی با باباتم هم شوخه میکنی. دیوونه، بادم با بابا شوخی داره، اونم تو اسمش؟ راست میگفت گفت. بیتاقت پرسیدم. بالاخره بابا چی شد؟ زهر خنده تلخی زد و گفت. باورت میشه؟ الان بیست و پنج سالمه ولی از همون شش سالگی یعنی نوزده سال هنوز چشم هم. همیشه توی زهنم تصور میکنم بالاخره یه جا یه گوشه ی این دنیای بیدر رو پی کرد. یه روز بابامو پیدا میکنم اون وقت، اون سنده لعنتیو که بابام در به خاطرش در شده شد و حالا به نام منه بهش میدم. همیشه فکر میکنم یعنی اون هنوز ما رو یادشه. اصلا یاد ما میفته. ممکنه یه روز خودش بیاد دنبالم. من با سادگی گفتم. حالا لااقل شانسو بردی، امود جوی اونو برات گرفته. نرگس با نگاهی عصبی گفت. اشتباه میکنی. آدم اموشو به عنوان امو خیلی دوست داره. نه جای باباش. مادرشو هم جای مادر. نه به جای زن امو. من با تهیور پرسیدم. یعنی چی؟ یعنی اینکه از اموم از مادرم و از خودم بدم میاد. دلم برای بابام که به خاطر من در به در شده می سوزه. و از مادر و عمو خودم شاید باورت نشه اینقدر کینه به دل دارم هرسیام آخه چرا من نمیفهمم چی میگی تو که هیچی خودمم 19 ساله نمیفهمم چه مرگمه اموم با مهربونه اگه اون با مادرم ازدواج نکرده بود معلوم نبود چی میشد شاید اصلا یه آدم عوضی با مادرم ازدواج میکرد و من به در بهدری و بدبختی میافتادم ولی با این همه هنوز نتونستم قبول کنم که اموی من جای پدرم و شوهر مادرم. یا خواهر و برادرم که اینقدر دوستشون دارم. آخه خیلی مسخر است که تو با کسی هم خواهر باشی هم دخترم و نه. وای نمیتونم بگم توی سرم چی میگذره. فکره که شب و روز مغز منو و گفتنی نیست و بیشترین بدبختی سر اینه که نمیتونم تکلیفم و با خودم روشن کنم. یعنی بالاخره ببینم از اینا بعدم میاد یه دوستشون دارم. ناراضی هم یا راضی میتونم ببخشم یا نه. در این حال دلمم براشون میسوزه. برای مادرم که گناهی نداره برای عموم که اونم گناهی مرتکب نشده و برای خودم که یه عمر لای منگنه موندمو و هنوز نتونستم تصمیم بگیرم. یک دفعه به سمت من چرخید و گفت حالا فکر کن این بدبختیه یا اونی که تو بهش میگی بدبختی؟ تو یه عمر با یه پدر مهربون که اونطوری عاشقانه دوست داشته زندگی کردی و بعد جلوی چشم با همه سختی ولی بالاخره دیدی که رفت فوت کرد و تموم شد. درسته دلت میسوزه سخته، دردناکه ولی به این اندازه که ندونی پدرت مرد هست یا زنده اگه زنده است در چه وضع زندگی میکنه نکبت یا خوشبختی؟ و اگه مرده چطوری مرده؟ به مرگ طبیعی؟ یا خودشو کشته؟ یا اصلا کشته شده؟ از اون طرف همیشه حسرت نگاه پر محبتی که بدونی نگاه پدرته به دلت مونده باشه نه نگاه اموتی یا پدر بزرگت و... وای محناس... خیلی وقتاست که از تمام کس و کارم نفرت دارم... حتی از مادرم... همیشه فکر می وقتی اینقدر اکراه و سرباز زدن بابامو دید... چرا مثل یه خمیر توی دسته اینو اون صبر کرد و صداش نه نیومد؟ اگه اونم از خودشی وجودی نشون میداد اگه مخالفت کرده بود... اگه وقتی منو حامل شد یه جوری منو از این برده بود و اگه یه عمر من با اگر و شاید و اما زندگی کردم تا مرز دیوونگی رفتم و برگشتم و آخرم بی و توی همه این سالها از اونجا که ناخداگاه از خونه فراری بودم با مردم و اجتماع جوش خوردم و دوست شدم و این ارتباط و دوستی و شنیدن درد سر دیگران بوده که منو سر نگه داشته. و هر بار با شنیدن درد دلشون به خودم نهیبزدم که درد من اصلا درد نیست. خودم توی سر خودم زدم و خودم رو توبیخ کردم و دوم رو اینه که حالا از دست تو که اینجوری خودتو باختی کفرم در اومده. اصلا از همه کسایی که تا یه خورده زندگی بالا و پایین میشه خودشونو ول میکنن نفرت دارم. از آدمایی که فقط بلدن مثل شیر برنج ولو بشن. با دست ای با نمک من کرد و شروع به شوخی و حرفهای بامزه زدن کرد. انگار نه انگار که چند دقیقه پیش آن حرف ها از دهانه همین آدم بیرون آمده بود. وقتی تعجب را توی چشم هایم دید یا شاید هم فکرم را خواند با سادگی و لحنی بامزه گفت چیه؟ توقع داری حالتا قیامت من روزه بخونم تو سینه بزنی؟ بس دیگه من درد دلمو کردم و سبک شدم تو هم اگه عقل داشته باشی که من شک دارم درس گرفتی از اون گذشته چون من شوخی میکنم دلیل نمیشه که توی دلم غم نباشه بیچاره همه که مثل تو بلد نیستن فوريقن برک بزنن یا فعل و بشن خیلی وقت آدمو حرف میزنن که در حقیقت حرف نزده باشه و خیلی و هم میخندن فقط برای اینکه گریه نکرده باشه متوجه میشی؟ یا بازم توضیح بدم؟ بعد در حالی که شکلکی خنده دار در می آورد گفت پاشو، پاشو اینقدر قیافی هالوا رو به خودت نگیر تو اگه یه خود مخصی کلت بود باید خیلی پیشتر از اینا به فکر می که دوستت به عنوان یه آدم حتما برای خودش یه قصه هایی داره نه اینکه که حتی یه بار سوال که نکردی هیچ فکرت هم مشغول نشده اونم هیچ تازه ذقت راحت میگی. من فکر میکردم چون با همه شوخی داری به بابات میگی خامون آدم خادم قخنگ در حالی که خودش هم از خنده من میخندید اضافه کرد هرهر <تصفيق> و هر زهر مار بایدم بخندی اگه خنگ نبودی که ط حالا فهمیده بودی غیر از تو هم آدمای دیگه تو این دنیا هستن. و اون وقت سرتون رو از لاک مبارکتون آورده بودین بیرون تا بلکه چشمای کمستون چهار قدم دورتر رو ببینه. راست میگفت. حالا دیگر اینقدر شعور پیدا کرده بودم که درستی حرفهایش را فهمم و قبول کنم. پس این بار هم دست در دست دوستم گذاشتم و برای راه افتادن به او تکیه کردم. چون با تمام وجود به این نتیجه رسیده بودم که راست می گفت. دیگر شیر برنج بودن کافی بود. یاد شهری افتادم که آزیتا همیشه می خواد. چشمها را باید شست. جور دیگر باید دید. چشمهای من هم اگر چه دیر و توسط دیگران و به زور شسته شد، ولی به هر حال توی جور دیگر دیدن به فریادم رسید. با اینکه از لحاظ جسمی در رنج بودم ولی سعی میکردم روحم روهم را قوی کنم و به تلاش وادارم. با آزیتا و نرگس دوباره هم پا شدم و توی هر کلاسی که میشد سر کردیم و گرچه نرگس همیشه به خنده میگفت از مبل بلخره چه آش شعل قلم کاری در میاد فقط خدا آلمه ولی من در سایه رفاهی که پدرم برایم باقی گذاشته بود توانستم برای فرار از گذشته هایم به جای دست و پا در بدبختی به شناختن دنیاهای تازه پناه ببرم و در این مسیر به موفقیت و مهارت هم دست پیدا کنم یکی از آن موفقیت‌ها یاد گرفتن رانندگی بود که من هیچ وقت فکرش را هم نمیکردم ولی بالاخره با تشویق نرگس و ها یاد گرفتم و برخلاف انتظار خودم و دیگران، قابلی هم شدم. دیگر برای آنکه به قول نرگس سر از همه ی کارها درآوریم، وسیله هم داشتیم. و خلاصه رفته رفته ارتباط گسترده و فعالیت و همراهی با نرگس آزیتا خواه خواه‌ناخواه بدون اینکه حتی خودم هم بفهمم، مرا به آدمی دیگر تبدیل کرد. ترسم از آدمها و اجتماع ریخت. آن پوسته ظاهری که خودم از خودم می‌شناختم، فرو ریخت و شخصیت نهفتهام رشد کرد و شکوفا شد. شخصیتی که پایه زهنیش را محمد پیرزی کرده بود. من بدون محمد مهنازی می شدم که او می و این تحول شیرین را داخه نداشتن او و نبودنش برایم زجرآور را کرد. زجری که آجز از درمانیا فراموشیان بودم. هرچه افکارم و به دنبالش اعمال و نحوه زندگیم تغییر می کرد بیشتر از قبل وجودم محمد را می تلبید. انگار هرچه زندگی را بیشتر می شناختم بیشتر هم محمد را می شناختم. و این برای من که دیگر او را نداشتم، شکنجهی، کشنده و دائمی بود. چه درد تلخ و نگفتنی به جانم می وقتی او را با دیگر مردهایی که به نوعی می شناختم و میدیدم مقایسه می کردم. نه، توی ذهن من هیچ مردی حتی قابل فکر کردن نبود. چه برسد مقایسه با محمد؟ همه این تغییر و تحول ها، مقایسه ها و تصمیم ها و نتیجه گیری ها بی اختیار توی مغز من صورت میگرفت و ذهن و قلبم با هدتی بیشتر به گذشته و محمد متمایل میشد و مرا بیچاره می کرد. چون آشق و طالب چیزی بودم که روزی خودم باعث گم شدنش شده بودم و حالا هیچ نشانی از اون نداشتم